برنامه خداوند به اندازم حبان نهایت بارش به سبب اونس قریش اونسه ایشان به سفر زمستانی و تابستانی پس باید پرویدگار این خانه را بپرستن ذاتی که ایشان را در گرسنگی طعام داد و در برابر ترس امن ساخت